چای نعنا ده دقیقه بعد نورا و برادرش در اتاق کوچک و بدون تهویه نشسته بودند که نام اتاق انتظار ویIP را یدک میکشید اما در واقع فقط چند صندلی و یک میز داشت که تعدادی از روزنامه های روز رویش گذاشته شده بودند. دو مرد میان سال هم در اتاق بودند که چیزی را توی لپتاپهایشان تایپ هایشان تایف میکردند. تا این لحظه نورا دیگر فهمیده بود که برادرش مدیر برنامهش است و اینکه از همان هفت سال پیش که شنای حرفه را کنار گذاشت جو مدیر برنامهش بوده برادرش پرسید با این غذاا مشکلی نداری؟ همین چند لحظه پیش دو نوشیدنی از دستگاه قهوه ساز خریده بود. پاکتی را کرد تا چای کیسه ی تویش را بیرون بیاورد نه نه. آن را توی لیوان آب جوشی گذاشت که از دستگاه قهوه ساز گرفته بود. سپس آن را دست نورا داد. نورا در تمام عمرش حتی یک بار هم چای نعنا ننوشیده بود. واسه منه؟ خب آره تنها چیز گیاهی بود که داشتن. برای خودش قهوه گرفته بود. نورا در دل به او حسودی می کرد. احتمالا در این زندگی کافئین نمی نوشد. با این غذایا مشکلی نداری؟ نورا پرسید؟ کدوم یا سخنرانی امروز؟ آها، آره چند دقیقه است؟ چهل دقیقه؟ آها پول زیادیه از ده رسوندمش به این، لطف کردی خب، بالاخره دارم بیس درصد پورسانت میگیرم، لطف خاصی به تو محسوب نمیشه نورا به این فکر کرد که چطور میتواند خاطرات مشترکشان را بفهمد و چطور میتواند بفهمد در این زندگی چرا پیش هم نشسته و مشکلی ندارند. ممکن بود به خاطر پول باشد، اما برادر نورا هرگز چندان اهمیتی به پول نداده بود. بله، درست است که وقتی نورا از هزار تو کنارگیری کرد و باعث شد قرار داد نبندند جو حسابی ناراحت و عصبانی شد، اما دلیلش بیشتر این بود که دلش میخواست تا آخر عمر در گروه هزار تو گیتار بزند و ستاره موسیقی راک باشد. نورا چند بار کیسه چای را در لیوان بالا و پایین کرد و بعد همانطور توی آب ولش کرد. تا حالا به این فکر کردی که زندگی چقدر میتونست متفاوت باشه؟ میدونی مثلا اگه من به شنا نچسبیده بودم چی میشد؟ نه نه خب مثلا اگه تو مدیر بررامه من نبودی چیکار کار میکردی؟ میدونی که مدیر بررامه خیلی های دیگه هستم. آره خب معلومه که میدونم. خب فکر کنم اگه تو نبودی مدیر بررامه گه نبودم چون اولین نفر تو بودی. بعد منو به کای و بعد از اون هم به ناتالی معرفی کردی. بعدش هم الی بنابراین... نورا جوری که انگار کاملا میدانست کای و ناتالی و الی چه کسانی هستند سرتکان داد. درسته اما شاید هم یه راه دیگه پیدا می کردی. از کجا معلوم؟ شاید هم هنوز توی منچستر زندگی میکردم. نمیدونم. منچستر؟ آره یادت هست که چقدر از زندگی اونجا خوشم میومد. دوران دانشگاه. بروز ندادن تعجب برای نورا خیلی سخت شده بود. چون حالا میدانست همین برادر که اینقدر رابطه خوبی با او داشت و حتی با هم کار می‌کردند دانشگاه هم رفته است در زندگی اصلیش برادرش مدرک تحصیلات عالیش را گرفت و بعد از دانشگاه منچستر در رشته تاریخ درخواست پذیرش کرد اما علامراتش به اندازه‌ای که باید خوب نبودند احتمالا به این خاطر که هر شب با راوی نشه می کرد. بعد هم جو به این نتیجه رسید که اصلا دلش نمی‌خواهد برود دانشگاه کمی دیگر با هم دیگر حرف زدند پس از مدتی جو چند لحظه سرگرم گوشیه شد. لورا تصویر مرد خوشقیافه، بشاش و متبسمی را روی صفحه گوشی او دید. پیش از آن هرگز این مرد را ندیده بود. همچنین حلقه ازدواج را دور انگشت برادرش دید و سعی کرد قیافه عادی و بی به خود بگیرد. زندگی متعهلی چطوره؟ جو لبخند زد. لبخندی واقعا خوشحال چهار سال میشد که ندیده بود جو اینطوری لبخند بزند در زندگی اصلیش جو هیچ وقت در عشق شانس نداشت با اینکه نورا از دوران نوجوانی از گرایش برادرش خبر داشت جو تا سن بیست و دو سالگی در این باره به هیچ کس چیزی نگفت هیچ وقت هم رابطه طولانی مدت یا شادی نداشت نورا از اینکه میدید زندگی خودش تا این حد میتوانسته روی زندگی برادرش تأثیر مطلوب بگذارد، احساس گناه میکرد. خب، خودت که ایوان رو میشناسی مثل همیشه است. نورا لبخند برادرش را پاسخ داد و وانمود کرد ایوان را میشناسد و دقیقا میداند چطور آدمی است آره، کارش درسته. خیلی واسه هر دوتون خوشحالم. جوخندی. از که پنج ساله که ازدواج کردیم. ولی یه جوری حرف میزنی که انگار تازه با هم دوست شدیم. نه، فقط میدونی بعضی وقتا به این فکر میفتم که خیلی خوششانسی. و پیدا کردی و خوشحالی. میگه سگ میخوام. جولب زد بحث الانمون سر اینه ولی خب منم خیلی بدم نمیاد اما ترجیح میدم یه سگ نجاتی یافته بگیریم اونم نه از این سگای مزخری مالتیپو یا بیشان گرگ میخوام میدونی یه سگ درست و حسابی نورا یاد بلته رفتاد حیبونا همراه های خوبی هن. آره تو هنوزم سگ دوست داری؟ آره سگ یا گربه؟ جو گفت گربه ها زیادی سرکشن حالا شده بود مثل همان برادری که نورا به یاد داشت. سگا جایگاه خودشونو میدونن دونن. سرکشی بنیاد حقیقی آزادیه. سرنوشت فرمان اینه که در نهایت برده بشن. به نظر میاد جو گیج شده باشد. این دیگه از کجا اومد؟ از کسی نقل قول کردی؟ آره، هنری دیوید سرو فیلسوف محبوبم. از کیت تا حالا به فلسفه علاقمند شدی؟ البته، در این زندگی نورا هرگز مدرک فلسفه نگرفته بود در همان زمانی که در زندگی اصلیش آثار سرو و لاوتسه و سارت را میخاند و توی آپارتمان دانشجویی بوگندویی در بریستول زندگی میکرد در این زندگی روی سکوی المپیک بیجینگ ایستاده بوده عجیب بود اما نورا درست به همان اندازه که در زندگی اصلیش برای خود دل می سوزاند که نتوانسته به تمامی توانمندی خود را شکوفا کند و در المپیک شرکت کند برای نورای این دنیا هم دلش میسوخت چون هیچ وقت آشق زیبایی ساده والدن یا خیشتنداری و صبر نهفته در تعملات مارکوس آورلیوس نشده بود نمی دونم حالا، توی اینترنت یه تعداد از نوشته ها شدیدم آها جالبه. من رسیش میکنم. میتونی یکم از گفته هاش رو توی سخنانی استفاده کنی؟ نورا احساس کرد کمی رنگش پرید. مم. توی این فکر بودم که امروز یکم متفاوت انجامش بدم. ممکنه مم. یکم بداهه پردازی کنم. به هر حال مدت ها بود که تمرین بداهه پردازی میکرد. چند شب پیش یه مستند خیلی جالب درباره گرینلند دیدم، منو یاد زمانی انداخت که عاشق قطب شمال شده بودی و کلی عکس خرس قطبی و اینجور چیزا رو از توی مجله ها می آره خانم علم میگفت بهترین راه برای کابش توی قطب شمال اینه که یخچال شناس بشم. واسه همین دوست داشتم شغلم این باشه. جو نجوا کرد. خانم علم اسمش آشناس. کتاب داره مدرسمون. آهان آره یه مدت عملا توی اون کتابخونه زندگی می‌کردی مگه نه آره تقریباً فکر کن اگه نچسپیده بودی به شنا ممکن بود الان توی گرینلند باشی نورا گفت ایسوالبارت چی یه مجمع نروژیه توی اقیانوس منجمد شمالی خیلی خوب پس توی نروژ بودی شاید یا شاید هم هنوسیه بتفورد بودم قصه میخوردم شغل نداشتم و به زور پول اجاره خونمو جور میکردم چه حرف مزخری تو حتی در اون صورتم کار بزرگی میکردی به معصومیت برادر بزرگترش لبخند زد توی بعضی از زندگی ها ممکنه من و تو حتی با هم حرفم نزنی چرت و پرته امیدوارم به نظر میآمد جو کمی معذب شده باشد و آشکارا دلش میخواست موضوع بحث رو عوض کند حدس بزن چند روز پیش رو دیدم نورا شانه ای بالا انداخت امیدوار بود کسی باشد که از قبل بشناسدش راوی، راوی رو یادته؟ نورا یاد همین دیروز افتاد که راوی در روزنامه فروشی با او جر و بحث می آها، آره، راوی خب، تو خیابون دیدمش توی بدفورد؟ اوه اسمشو هم نیار سالهاست که نرفتم بدفورد نه توی یه بلک فرایزر. همینطوری همینطوری علکی, علکی. فکر کنم حداقل یه دهه میشد که ندیده بودمش می خواست بره می خونه واسه همین مجبور شدم براش بگم که دیگه از الکل پرهیز میکنم بعد از اونم مجبور شدم بهش بگم که یه زمانی دائول خمر بودم همه چیز رو گفتم اینکه سالها میشه که یه لیوان نوشیدنی نخوردم و یه پک به ماری نورا سری به تایید تکان داد و وانمود کرد از شنیدن این حرفش قافل گیر نشده از همون وقتی که بعد از مرگ مامان به درد سر افتادم فکر کنم توی سرش داش می یارو دیگه کیه اما حالش خوبه الان دیگه فیلم بردار شده هنوزم یکم کار موسیقی میکنه ولی ولی راک. ضایرا دیجی شده یادتی که منو اون سالها ها پیش یه گروه موسیقی زدیم هزار تو دروغ گفتن کم کم نورا آسانتر میشد آره هزارتو. البته مال خیلی وقته پیشه ها. آره، حس کردم دلش واسه اون روزا تنگ شده. حتی با این که کارمون خیلی بد بود و من اصلا بلد نبودم بخونم. تو چی؟ تا حالا به این فکر نیفتادی که اگه گروه هزار تو به موفقیت میرسید، چی میشد؟ جو خنده نصفتاً تلخ کرد. <تصفح> شک دارم که اتفاق خاصی میافتاد. شاید یه به دیگه هم احتیاج داشتین. منم با کی بردی که مامان و بابا واسه گرفتن آهنگ می زدم. جدی؟ کی وقت این کارا رو داشتی؟ زندگی بدون موسیقی. زندگی بدون خواندن کتاب هایی که عاشقشان بود. اما البته زندگیی که در آن با برادرش سمیمی بود. زندگیی که در آن برادرش را ناامید نکرده بود. به هر حال، راوی سلام رسون. دوستش هم دیگر رو ببینین. محل کارش فقط یه ایستگاه مترو با اینجا فاصله داره. واسه همین گفت سعی میکنه توی سخنرانی شرکت کنه. چی؟ م... خب خوب... خوب... خوب... خوب... کاش نمی اومد. چرا؟ راستش... هیچوقت چندان ازش خوشم نمی اومد. جو اخم کرد. واقعا؟ یادم نمیاد هیچوقت این حرفو زده باشی. به سر خوبیه. آره... اون قدیمای کم آتل و بود ولی به نظر میاد دست و پاشو جمع کرده باشه. نورا معذب بود. جو؟ بله. وقتی که مامان مرد. خب من کجا بودم؟ انظورت چیه؟ امروز حالت خوبه نورا؟ قرصهای جدیدت به درد میخورن؟ قرص؟ شروع کرد گشتن توی کیفش و یک جعبه یک قرص زد سردگی پیدا کرد. دلش هر ری پایین ریخت. فقط میخواستم بدونم قبل از اینکه مامان بمیره درسته حسابی دیدمش جو اخم کرد هنوز هم همان جو همیشگی بود و توانست درست ذهن خواهرش را بخواند هنوز هم میخواست از واقعیت فرار کند خودت خوب میدونی که ما پیشش نبودیم خیلی سریع اتفاق افتاد بهمون به نگفته بود چقدر مریضه تا نگرانمون نکنه یا شایدم چون نمیخواست بهش بگیم دست از مصرف الکل بردوه الکل. مامان الکل مصرف میکرد؟ نگرانی جو بیشتر شد. نورا، نکنه فراموشی گرفتی؟ از همون روزی که نادیا پاش به زندگیمون باز شد، مامان همیشه یه بطری جین توی دستش داشت. آره، البته یادم میاد. به علاوه، تو داشتی واسه مسابقات قهرمانی اروپا آماده میشدی و مامان نمی‌خواست حواستو پرت کنه. خدایا. خدایا، باید میرفتم پیشش. یکیمون باید میرفت پیشش، جو. هر چهره جو ناگهان سرد شد. تو که ایش قدرا به مامان نزدیک نبودی؟ حالا چی شده یه دفعه؟ بهش نزدیکتر شده. یعنی میتونستم بشم. من دیگه داری میترسونیم. امروز رفتار دوست شده. لورا با سر تایید کرد. آره من فقط آره فکر کنم حق با توه. فکر کنم فکر کنم به خاطر قرصا باشه. یاد مادرش افتاد که در آخرین ماهای عمرش به او گفت. نمیدونم اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم احتمالاً به جو هم همین حرف را میزد اما در این زندگی هیچ کدامشان را نداشت بعد پریا وارد اتاق شد لبخند میزد و گوشیش و یک جور تخته شاسی را توی دستهایش داشت گفت وقتشه درخت زندگی ما پنج دقیقه بعد نورا دوباره در اتاق وسیع کنفرانس هتل بود. دست کم هزار نفر در حال تماشای سخنران قبل از نورا بودند که داشت ارائه اش را پایان میداد. نویسندهی کتاب صفر تا صد رسیدن به موفقیت در کار. همان کتابی که دن در زندگی دیگری روی میز کلار تختش گذاشته بود. اما را با اینکه روی صندلی رزرو شدهش در ردیف اول نشسته بود به حرفهای سخنران گوش نمیداد. دلش به خاطر مادرش گرفته بود و استراب سخنرانی را داشت. به همین خاطر گهگاهی فقط چند کلمه را از سخنرانی نفر قبلیش میشنید. مثل تکیه های نان کروتانه توی سوپ مینسترونه کلماتی مثل شاید ندونین، بلند پروازی، چیزی که ممکنه از شریدنش متعجب بشین، اگه من میتونم و سختی های زندگی. نفس کشیدن در این تالار سخت بود. بوی موکت نو و عطری مشک مانند میداد سعی کرد آرام بماند. به سمت برادرش خم شد و نجوا کرد. فکر نکنم بتونم انجامش بدم چی؟ فکر کنم دارم، فکر کنم دارم دچار حمله عصبی میشم. جولاب خانزان زنان نگاهش کرد. اما در چشمانش حالت جدی و خشنی بود که نورا از یک زندگی دیگر آن را به یاد میآورد همان زندگیی که در آن نورا قبل از یکی از اجراهای اولیه هزار تو در میخانهی توی بدفورد دچار حمله عصبی شده بود. مشکلی برات پیش نمیاد. فکر نکنم بتونم انجامش بدم. مغزم خالی شده. داری زیادی بهش فکر میکنی. استرس دارم. الان هیچ فکر دیگه هیچجز ای این توی سرم نمیاد. آروم باش، آروم باش بابا نامیدمون نکن. اما اما سعی کرد به موسیقی فکر کند. فکر کردن به موسیقی همیشه آرامش میکرد. آهنگی یادش آمد. حتی در دل خودش هم خجالت میکشید که آن آهنگ آسمان زیبا بود، آهنگی شاد و پر امید که از مدت ها پیش دیگر آن را نخوانده بود. آسمان تاریک و تاریک تر می شود، سیاهی و کبودی در رقابتند. اما ستاره ها هنوز برای تو. اما بعد زن پنجا و چند سالی خوش لباسی که روی صندلی کناری نورا نشسته بود و در واقع بوی عطر مشک مانند از سمت او به مشام می رسید، به طرفش خم شد و نجوا کرد. به خاطر اتفاقی که وسط افتاد خیلی متاسفم، منظورم اتفاق توی پرتغاله. کدوم اتفاق؟ پاسخ زن در میان سر و صدای تشویق هزار محو شد. لورا دوباره پرسید: "چی؟" اما دیگر دیر شده بود. لورا را روی صحنه خواستند و برادرش داشت با آرنج به او سقر میزد. صدای برادرش را شنید که تقریبا داد میزد. "استاد میکنن، برو روی صحنه." محتاطانه به طرف تریبون روی صحنه رفت. تصویر چهرگ خودش را روی صفحه پشت صحنه می دید که مدال طلا دور گردنش بود و پیروز مندان لبخند می سد. همیشه از اینکه کسی او را ببیند و زیر نظر باشد متنفر بود. دست توی میکروفون گفت سلام، خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم. نزدیک به هزار نفر به او خیره شده و منتظر بودند. پیش از این هرگز با این همه آدم همزمان صحبت نکرده بود حتی وقتی هم در گروه هزار تو بود هیچ وقت برای بیشتر از صد نفر اجرا نکرده بود تازه همان موقع هم سعی می کرد بین آهنگ ها خیلی حرف نزند در دوران کارش در مغازه لوازم موسیقی هم با اینکه خیلی راحت با مشتری ها حرف میزد در جلسات بین همکاران هرگز چیزی نمی گفت حتی با اینکه هرگز بیشتر از پنج نفر در اتاق نبودند در دوران دانشگاه ایزی همیشه خیلی راحتتر کنفرانس هایش را ارائه میداد اما نورا از چند هفته قبل برای ارائهش استراب و نگرانی داشت. جو و روری با چهره های سردرگم به او خیره شده بودند. نورایی که در آن سخنرانی تد دیده بود با این نورا فرق می کرد. شک داشت هیچ وقت بتواند به آن نورا تبدیل شود. مگر اینکه تمام اتفاقهای زندگی او را از سر بگذراند. سلام، من سید هستم. راستش این حرف را برای شوخی نگفته بود، اما تمام حضور با شنیدن حرفش خندیدند. آشکارا هیچ نیازی نبود که خودش را معرفی کند. نورا گفت: زندگی خیلی عجیبه. اینکه ما تمام زندگیمون رو همزمان از سر میگذرونیم توی یه خط صاف. اما در واقع تصویر کامل زندگیمون این نیست. چون زندگی نه فقط کارهایی رو که انجام میدیم بلکه کارهایی رو هم که انجام نمیدیم شامل میشه و هر لحظه زندگیمون برای خودش یه جور تغییره، هنوز واکنشی نگرفته بود. بهش فکر کنین به اینکه چطور زندگیمون رو به عنوان یه انسان مشخص شروع میکنیم. مثل دونه درختی که توی زمین کاشته میشه و بعد رشد میکنیم. اولش فقط تنه یه درختی. مطلقا هیچ واکنشی. اما بعد اون درخت، درختی که در واقع زندگی ماست، شاخه دار میشه. به تمام اون شاخه هایی فکر کنین که در ارتفاع های مختلف از تنه درخت بیرون میان و رشد میکنن. بعد هم تمام شاخه هایی که از شاخه های قبلی رشد میکنن و گاهی در جهت های مخالف بیش میرن. اون شاخه ها هم دوباره و دوباره شاخه میدن. حالا به انتهای تمام اون شاخه ها فکر کنین که همشون از یک جا آغاز به رشد کردن زندگی هم مثل همینه اما در مقیاس بزرگتر در هر ثانیه عمرمون شاخه های جدید رشد میکنن از دید ما از دید همه تمام این اتفاق ها مثل یه زنجیره پیوسته است تمام شاخه ها فقط یک بار سفر زندگی رو از سر گذارندن. اما در هر صورت شاخه های دیگی هم هستن امروز فقط یکی نیست امروز های دیگه ای هم هست اگه در زمان گذشته مسیر متفاوتی رو انتخاب کرده بودین، حالا زندگی های دیگه ای رو تجربه می‌کردین. اون زندگی ها وجود دارن. این درخت زندگیه. مذاهب و اساتیر مختلفی درباره درخت زندگی صحبت کردن. توی بودیسم، یهودیت و مسیحیت بهش اشاره شده. خیلی از فیلسوفا و نویسندگان از استعاره درخت استفاده کردن. برای سیلویا پلات هستی مثل یه درخت انجیر بود و هر زندگی که میتونست تجربه کنه از اون زندگی که توش ازدواج کرده و خوشحاله گرفته تا اون زندگی که توش شاعر موفقی میشه تمام این زندگی ها انجیرهای شیرین و آبدار این درخت بودن اما اون نمیتونست همه انجیرهای شیرین و آبدار رو مزه کنه به همین خاطر هم به چشم خودش میدید که انجیرها فاسد و خراب میشن و از بین میرن فکر کردن به تمام زندگی هایی که تجربه نمیکنیم میتونه دیو کنه برای مثال من توی بیشتر زندگیام اینجا روی صحنه نیستادم و درباره موفقیت سخرانی نمیکنم توی بیشتر زندگیام اصلا توی المپیک مدالی برنده نشدم یاد یکی از حرف‌های خانم علم در کتابخانه نیمه شب افتاد میدونین انجام یک کار به شکلی متفاوت معمولا مثل اینه که همه چیز رو متفاوت انجام داده باشیم هرچقدرم که تلاش کنیم نمیتونیم کارهایی رو که توی دوران زندگی انجام دادیم تغییر بدیم حالا تماشا چیان داشتند به حرفایش گوش میدادند آشکارا به یک خانم علم در زندگی هایشان احتیاج داشتند تنها راهی یاد گرفتن زندگی کردنه نورا بیست دقیقه دیگر را هم به همین منوال هرچه که از حرفهای خانم علم به یاد می آورد در سخنرانیش گفت بعد هم به دست نگاه کرد که زیر نور تریبون سفید شده بودند. با دیدن خط که صورتی رنگ و برامدهی روی دستش خیلی راحت متوجه شد که خودش آن زخم را ایجاد کرده و همین باعث شد رشته یک از دستش در برود. یا در واقع رشته یک حلام جدیدی را آغاز کند. و مسئله اینه که، اینه که مسیری که ما به عنوان مسیر موفقیت نگاهش می در واقع مسیر موفقیت نیست. چون بیشتر مواقع تفکر ما درباره موفقیت به یک ایده خارجی مسخره از حس پیروزی خلاصه میشه. مثل یه مدال المپیک یه شوهر ایدئال یا یه حقوق خوب، همه ی ما همین حد و حدود رو داریم و سعی میکنیم بهش برسیم. در حالی که موفقیت چیزی نیست که بشه اندازش گرفت. زندگی مسابقه نیست که بتونیم توش برنده بشیم. در واقع همش مزخرفه. تاماشاچی شده بودند. آشکارا این آن سخنرانی نبود که انتظارش را داشتند. نورا جمعیت را بررسی کرد. تنها یک چهره را دید که به او لبخند میزد. شناختنش یک لحظه طول کشید. چون اینجا لباس نخیه آبی و شیکی به تن داشت و موهایش نسبت به آن زندگی که در بدفورد مانده بود خیلی کوتاهتر بود. اما نورا سرانجام متوجه شد که صاحب آن چهره راویست، به نظر می آمد این راوی با او دوست باشد اما نورا نمی توانست آن یکی راوی را از یاد ببرد که با عصبانیت از روزنامه فروشی خارج شده بود چون پول خرید یک مجله را هم نداشت و نورا را به این خاطر مقصر میدانست میدونم که انتظار داشتین همون سخنانی تدر براتون ایراد کنم و مسیر موفقیت رو نشونتون بدم اما حقیقت اینه که موفقیت فقط یه توهمه همش توهمه منظورم اینه که آره چیزایی هستن که میتونیم بهشون پیروز بشیم مثلا من ترس از صحنه دارم اما میبینید که اینجا روی صحنه ایستادم و دارم حرف میزنم من رو ببینین روی صحنه ایستادم یه نفر هم همین اواخر بهم هم گفت که مشکلم در واقع ترس از صحنه نیست ترس از زندگیه میدونین چیه درست میگفت چون زندگی ترسناکه و برای این ترسناک بودن هم دلیل خوبی وجود داره. دلیلش اینه که مهم نیست کدوم شاخه زندگی رو انتخاب کنیم. چون در هر صورت همون درخت فاسد و خرابی من میخواستم توی زندگی به خیلی چیزا برسم. خیلی چیزا. اما اگه زندگیتون خراب باشه، هر کاری هم که بکنین خراب میمونه. فساد و خرابی تمام درخت رو نابود میکنه. جو ناامیدانه دستش را تون تند روی گردنش میکشید و به او اشاره می کرد که حرفایش را بس کند خیلی خوب فقط با هم مهربون باشین و همین مهربون باشین حس می کنم الانه که برم بنابراین دوست دارم بگم که برادرم جو رو دوست دارم دوستت دارم برادر و همه شمای رو هم که اینجا این دوست دارم خوشحال شدم که اینجا اومدم دورا درست همان لحظه‌ای که از حضور در تالار اظهار خوشحالی کرد دیگر در تالار نبود خطای سیستم به کتابخانه نیمه شب برگشت. اما این بار کمی از قفصه های کتاب فاصله داشت. در همان محبتی دفتر مانندی بود که مدتی پیش یک نظر آن را توی یکی از راهروهای عریض تر دیده بود. روی میز پر بود از ثبت های اداری مملو از کاغذ روی همان باشته و جعبه های متعدد. همچنین کامپیوتر هم روی میز بود. یکی از آن کامپیوترهای بسیار قدیمی، جعبه شکل و کرمی رنگ بود و دور تا دورش روی میز پر از کاغذ بود. از همان کامپیوترهایی که مطمئناً خانم علم زمانی در کتابخانه مدرسه داشته. حالا هم پشت به بنورا نشسته و به مانیتور خیره شده بود و با عجله و نگرانی با کیبورد چیزی تایپ می‌کرد. های بالای سر، همان های بدون حباب که با سیم از سقف آویزان بودند، تون تون خاموش و روشن می شدند. بابام به خاطر من زنده بود. اما به خاطر من هم به مامانم خیالت کرده بود و مامانم هنوز هم زودتر از زندگی اصلی مرده بود. با برادرم رابطه خوبی داشتم چون هیچ وقت نامیدش نکرده بودم. در واقع هنوز هم همون آدم همیشگی بود و فقط به این خاطر توی اون زندگی با هم خوب بود که کمکش می کردم پول خوبی در بیاره و... و هی، هیچ چیز مثل رویایی نبود که از شرکت توی المپیک برای خودم تصور کرده بودم هنوز خودم بودم یه اتفاقم توی پرتغال افتاده بود احتمالا سعی کرده بودم خودم رو بکشم یا یه همچین چیزی اصلا هیچ زندگی متفاوتی وجود داره یا فقط دکوراسیون خونه و محیط اطراف هم عوض میشه خانم علم به اون گوش نمی کرد نورا متوجه چیزی روی میز شد یک خودنویس پلاستیکی نارنجی رنگ قدیمی. دقیقاً از همان مدلی که نورا زمانی در دوران مدرسه داشت. آهای خانم علم، صدامو میشنوین؟ اتفاقی افتاده بود. چهره یک تابدار از نگرانی در هم رفته بود. از روی مانیتور چیزی را با صدای آهسته برای خودش خواند. خطای سیستم. خانم علم، آهای، الو، منو میبینین؟ با دست روی شانه ی خانم علم زد. این کارش اثر کرد. خانم علم رویش را از کامپیوتر برگرداند و ناگهان چهرش قرق آرامش شد. آخ نورا، برگشتی؟ توقع دشتین بر نگردم؟ فکر میکردین دلم میخواد توی اون زندگی بمونم؟ خانم علم سرتکان داد. اما به نظر میامد اصلا هیچ حرکتی نکرد. نه. خضیه این نیست فقط خیلی شکلنده به نظر می رسید چی شکننده به نظر می رسید انتقال انتقال انتقالت از کتاب به اینجا از زندگی که انتخاب کردی به اینجا ظاهرا مشکلی وجود داره کل سیستم دچار مشکل شده و من هم هیچ کنترل مستقیمی روش ندارم یه مشکل خارجیه منظورتون زندگی واقعی مه؟ خانم علم به صفحه مانیتور خیره شد. آره، چون کتابخونه نیمه شب فقط به این خاطر وجود داره که تو تو توی زندگی اصلید وجود داری. پس یعنی دارم میمیرم؟ خانم علم خسته به نظر میرسید. ممکنه بهتر اینطور بگم که امکان داره در حال نزدیک شدن به زمانی باشیم که همه ها و احتمالات از بین میرن نورا یاد حس خوب شنا در استخر افتاد اینکه چه قدر احساس زنده بودن میکرد. بعد اتفاقی در درونش رخ داد حسی عجیب مثل تغییری در دلش تغییری فیزیکی تغییری در او ناگهان فکر مرگ خاطرش را آزرده کرد همزمان لامپ‌های روی سقف دست از سوسو سو زدن برداشتند و مثل قبل پرنور شدند. خانم علم با دیدن اطلاعات جدیدی روی مانیتور دستهایش را به هم کوبید خوب، برگشت، خوبه، مشکل رفع شده، دوباره راه افتاد که البته فکر می کنم به لطف تو باشه. چی؟ خب توی کامپیوتر نوشته علت ریشهای مشکل درون میزبان موقتا رفع شده تو علت ریشه‌ای هستی تو میزبانی لبخند زد نورا پلکی زد و بلافاصله بعد از باز کردن چشمانش متوجه شد خودش و خانم علم در بخش دیگری از کتابخانه ایستادهاند دوباره میان های متعدد کتاب به خشکی و با حالتی معذب رو به هم دیگر ایستاده بودند خانم علم گفت، خیلی خوب، حالا بهتر آروم باشیم. بعد با آرامش خیال نفسش را بیرون داد. آشکارا داشت با خودش حرف میزد مامانم، مامانم توی زندگی های مختلف، در تاریخ های مختلفی مرده. یه زندگی می خوام که مامانم توش هنوز زنده هست. چنین زندگیی وجود داره؟ توجه خانم علم به سمت نورا جلب شد. شاید وجود داشته باشه عالیه اما نمیتونی بری داخلش چرا نمیتونم؟ چون این کتاب خونه واسه یه انتخاب های توه امکان نداشته بتونی با یکی از انتخابات کاری کنی که بیشتر از دیروز عمر کنه متاسفم یکی از لامپ های بالای سر نورا سوسو زد اما بقیه کتابخانه همانطور که بود باقی ماند باید به چیز دیگه ای فکر کنی نورا. توی زندگی قبلی چه چیزهای خوبی وجود داشت؟ نورا سری به تعیید تکان داد. شرا کردن. از چنا خوش می اومد. اما فکر نمی کنم توی اون زندگی شاد بودم. مطمئن نیستم که اصلا توی هیچ زندگی شاد باشم. هدف شاد بودنه؟ نمیدونم. فکر کنم دوست دارم زندگی معنایی داشته باشه. می‌خوام یه یک کار خوب بکنم. ظاهرا چیزی یاد خانم علم آمد یه زمانی میخواستی یخچال شناس بشی آره خودت دربارش حرف میزدی بگفتی به قطب شمال علاقه داری واسه همین پیشنهاد کردم یخچال شناس بشی یادمه بلافاصله از این فکر خوشم اومد ولی مامان و بابام هیچ وقت علاقهی بهش نشون ندادن چرا؟ واقعا نمیدونم تشویقم میکردن که شنا کنم خب دستی کم بابا تشویقم میکرد اما هر چیزی که جنبه علمی داشت به نظرشون مسخره بود نورا ته دلش قمی امیق احساس کرد از همون لحظه ای که پا به دنیا گذاشته بود پدر و مادرش بین او و برادرش فرق میگذاشتند به خانم علم گفت بهجزوس شنا توی بقیه چیزا از جو انتظار پیشرفت داشتن مامانم نمیزش دست به کاری بزنم که ممکن بود باعث بشه از پیششون برم برخلاف بابا مامان حتی تشویقم هم نمیکرد که شنا کنم اما مطمئنا زندگی وجود داره که توش به حرف مامان گوش نکردم و الان یه محقق توی قطب شمال شدم از همه چیز دورم هدف دارم و به بهتر شدن کره زمین کمک میکنم درباره تأثیر تغییرات اقلیمی تحقیق میکنم و توی خط مقدم تمام این اتفاقا هستم خو میخواای اون زندگی رو برات پیدا کنم؟ نورا آه کشید هنوز اصلا نمیدانست دقیقا چه میخواست؟ اما دست کم مدار قطب شمال به معنای تغییر بود خیلی خوب آره؟